با سلام 21 و شنبه شب را ضمن تغییر از انداختن چند عکس یادگاری توسط یک پهباد ایرانی از ناو هواپیمابرد ترومن آمریکا در خلیج فارس با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای سافت گذشته آغاز می‌نماییم. جلوگیری پلیس از تجمع دانشجویان بسیجی در برابر وزارت نفت در اعتراض به قراردادهای نفتی تازه ایران با کشورهای خارجی و نظر ناظران که با ویل کنین بچه ها دلتنگ برادر زنجانی هنمشون ممنون شدن خرید و فروش اسلحه در فیسبوک و اعتراض جمعی از اصناف ارازه لوباش ایرانی که داشت مایی تو فیسبوک میشود اسلحه خرید زودتر خبر ندادین ما هم یه تا کلاش بخریم و وعده مشروط فرانسه مبنی بر به رسمیت شدن کشور فلسطین و نظر کارشناسان که او, او احتمالا سال دیگه نتانیاو میاد تو سازمان ملل دنیا رو از خطر فرانسه آگاه میکنه سرخط مهمترین به امروز و امشب را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانم بلی با سلام وزارت کشاورزی کشور عربستان سعودی به وارد کنندگان دام زنده این کشور اعلام کرده است که برای جلوگیری از شیوع بیماری تب تگرگی در این کشور باید از واردات دام زنده از ایران امتنا کنند ای آقای میکروفون تلا طب طب طب تگرگی دیگه چیه؟ تگرگی دیگه چیزی من ای... یادم بود این طب اسمشی ربطی با و هوا داشت ولی آه... موقع که می نوشتمش یاد دقیق چی بود درستش طب برفکی بول بول سلامت واقعا. طب برفکی اسلامی با عرض پوزش در همین رابطه یکی از کارشناستان دامی کشور به خبرنگار ما گفت جالب هست که کشور عربستان تا همین امروز هیچ مشکلی با بیماری طبت اگر ببخشید طب برفکی دام های ایرانی نداشت ولی بعد از اختلافات سیاسی اخیر بین دو کشور به طور ناگهانی به یاد این بیماری افتاد وی پیش بینی کرد حکومت عربستان در آینده نزدیک وزشر باد از سمت ایران به عربستان را هم ممنوع کند پایان گزارش